اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خدمت عزیزان دانشجو عرض سلام دارم و روز بخیر خیل انشاءالله که در صحت و سلامت کامل باشید ما در مقدمه بلاغت تعریف فساحت رو داشتیم تقسیم کردیم فساحت رو به فساحت در کلمه کلمتون فسیحتون فساحت در کلام کلام فسیحون و فساحت در متکلم متکلمون فسیح هر کدوم رو هم بیان کردیم بعد وارد بحث بلاغت شدیم بلاغت رو هم تعریف کردیم به کلام بلیغ و متکلم بلیغ و کامل برای شما توضیح دادیم توضیح دادیم عباس چان سر کلاس هستم ما برای شما توضیح دادیم کامل بعد از اینکه فساحت و بلاغت رو کامل بیان کردیم و اقسان آن رو براتون گفتیم وارد به کلام شدیم و گفتیم اسالی به کلام سه قسمه یک قسم علمی اسلوب علمی یک قسم اسلوب عدبیه و یک قسم هم اسلوب خطابی اسلوب علمی رو توضیح دادیم مثل کتاب شیمی، فیزیک، ریاضی، جب، مثلثات زمین شناسی این نوع کتب که در واقع اصل اون محتوای علمیه و این الفاظ باید اینقدر روشن و روان و بدون خیال و بدون تشبیه و بدون استعاره و حتی آرایه های و اینها روان روان سلیس جوری که آموز باشد هر هرچقدر روانتر بدن ولی باید اصول و قواعد کلام صحت کلام درش رعایت شده باشه یعنی اون گرامرش درست باشه اون, اون چیزایی که در فساحت و بلاغت بیان کردیم توش باشه ولی اینجا جا, جا جای وضوحه جای استدلال جای عقل شما عقل افراد رو مورد خطاب قرار میدید بعد از اسلوب علمی اومدیم سر اسلوب ادبی گفتیم در اسلوب ادبی، در واقع زیبایی لفظی و زیبایی موسیقی و ظاهر سخن خیلی ارزش داره. و از ظاهرترین مشخصاتش منشه جمال در اون هم گفتیم که توی خیالیه که درش هست و تصویری که داده میشه و گفتیم که اینجا در تشبیحات به قول خودمون در استعاره ها در مجازها جای تاخت و تازه و نمونه هایی برای شما ذکر کردیم اینجا معنوی صورت محسوس میپوشه محسوس صورت معنوی میپوشه اینجاست که جا برای تاخت و تازه ادوه. اینجا با احساس در اسلوب ادبی برخلاف اسلوب علمی که با عقل مخاطبین ما درگیر بودیم اینجا با احساس شعور درگیر هستیم لذا برای شما مثال زدم ز سم سطوران در آن پندشت، زمین شش شد و آسمان گشت هشت گفتیم این از لحاظ علمی بگید جایگاهی نداره اما از لحاظ ادبی تو اسلوب عدوی خیلی میزنن چون خیال توشه تصویر توشه ولی از نظر علمی اگر این رو میخواست بیان بکنه باید به سبک بسیار در میدان جنگ وقتی دلشگر ما هم درگیر شدند و کارزار بالا گرفت آنقدر اسفان در این میدان جنگ دویدند و گرد و خاک بپا کردند که آسمان از گرد و خاک آنها تیره و تار شد. مثلا یه همچین چیزی دیگه نمیتونی بیای زمین رو بکنی هفت طبقه مثل پوست پیاز آسمان رو بکنی هفت طبقه مثل پوست پیاز بعد بگی زهین ها دویدند و یه طبقه باسومشون از این زمین تراشیدند و فرستادند گرد و غبار و آسمان یک طبقه کلیزی در زیر طبقات آسمان پیدا شد زمین شیش شد و آسمان گشتش این فقط تصویر فقط خیاله فقط اسلوب و ولی از حضور استدلالی به قول خودمون جایگاهی ندارد. نگاه کنید توی کتابتون درست شد؟ توی اسلوب ادبی، توی صفحه 13 کتابی که در مقابل منه یه مثالی برای اسلوب ادبی میزنه خب که من این رو میخوام بخونم بعد وارد اسلوب خطابی میخوام بشم که شعر متنبی رو مثال میزنه فل متنبی لایران نگاه کنید نگاه کنید اگر ما استاد پزشکی بودیم و کلاس پزشکی داشتیم و میخواستیم که بیان کنیم طبی رو که افراد میگیرن به اسم تب نوبه یعنی ویروس وارد بدن میشه بدن در مقابل اون شروع به مقابل نمیکنه کنه های سفید و سیستم ایمنی بدن با اون درگیر میشه بدن حرارت پیدا میکنه تب میکنه بعد وقتی بدن بر این ویروس غلبه میکنه یه عرض سردی میریزه طرف احساس راحتی میکنه و ویروس عقب میشه بعد اون خودشو بازسازی میکنه بعد از چند ساعت دوباره حمله میکنه، دوباره باز تپ میکنه، این سیستم بهش میگفتن تب نوبه، گای فاصله هاش مثلا یه روز در میون بود، بلکه اگه بدن قلبه پیدا میکرد، مثلا هیل میشد دو روز در سه روز در خوب میشد، بدن اونو ویروس ساز از بینید، اگر ویروس قلبه پیدا میکرد، فاصله کمتر میشد، مثلا 8 ساعت یه بار تب میکرد، دوباره 5 ساعت یه بار تا آخر میرسید به جایی که ا ای طب نوبه که هی طب میگیره و میره و برمیگرده هی ویروس قلبه میکنه بدن غلبه میکنه تا این سرا الان میان بدن رو تقویت میکنن تا اون ویروس رو بتونه درک خود اگر ما میخواستیم پزشکی بگیم باید همین رو مگفتیم, مگفتیم ویروس وارد بدن شده سیستم ایمنی بدن با او با مقابله کرده و در این کارزار بین این دوتا بدن حرارتش رفته بالا بعد که ویروس سرکوب میشه بدن برای خونک شدن و خودش عرق میکنه و سیستم ایمنی غلبه میکنه بعد اون ویروس دوباره خودشو بازسازی میکنه حمله میکنه و همین شکل ادامه داره تا یا سیستم ایمنی برو غلبه کنه یا اون ویروس سیستم ایمنی بدن رو مختل کنه این در بین صحت و سلامت و او هست این با قول خودمون یه سیستم علمی استدلالی در واقع ویروس و میکروبی که وارد بدن شده رو داره توضیح میده سیستم ایمنی و گلگل های سفید و درگیر شدنش و اینها یه این مشه علمی این خیلی روان دیگه حالا که دیگران بلدن و کار منم نیست اما متنبی ادیبه از همین تب نوبه میاد یه تصویر سازی خودش تب نوبه گرفته اینطور که علمی توضیح بدنی از این یک سبک ادبی درست بکنه یک غزل درست کرده غزل درست کرد. نگاه کنید میگه فلمتنبی لا یرا یعنی هم ما یعنی تب محنس هست هست ما ار راجعه تبی که میره و دوباره برمیگرده تب نوبه درست معتقد نیست تب نوبه کمایراها علعت باق همونطور که پزشکان در اصلوب علمی معتقدند او معتقد نیست تب نوبه اثرن مفعول دومه معتقد نیست تب نوبه اثر است پیامد است لجراسین برای ویروس ها میکروب ها تدخل الجسم ویروس هایی که وارد جسم شدند، و طرف او حرارت او درگی با سیستم ایمنی شدن و حرارت بدن رفته بالا و توصبه با رعدتن و قشعری رعدتن و این باعث تب و لرز شده اونطور میشه دیگه طرف تب و لرز میکنه رعدتن. حتی ازا فرقت نوبتوها تا جایی که نوبهش تمام میشه یعنی اون سیستم ایمنی بر او غلبه میکنه تسب و بل جسم و عرق. جسم میریزه یه علاقه شدید درست شد سد میشه بعد دوباره بعد از مدتی همین سیستم ادامه پیدا میکنه این معتقد نیست اینا. این علمیه با عقل سر و کار داره بازماش. با آزمایشگاه سر و کار داره ویروس رو نوعشو مشخص مشخص میکنه سیستم ایمنی بدن رو بیان میکنه که چه توانی داره و چه توانی نداره اینا رو معتقد نیست ولی میاد به این شکل درش میاره یعنی کسی کسی بخونه ملاکه یا صمره و حکما تراها به اویات میاد اینطوری توصیفش میکنه حالا گوش گفتیم که این تبع بهش میگن تبع نوبه و تبع الهما معنسه معنسه درست به خاطر همین از رو میبینید ان هما راجعه مؤنث عربی دیگه میاد و جالبم هست جالبم هست این تب نوبه حالا یه مقدار به دلیل اینکه آنتیبیوتیکا زیاد شده این مقدار بیماریش تخفیف پیدا کرد این تب نوبه الان کم تره میگه اینکه آنتی بیوتیکاها خیلی تاثیرگذارو دارین هستن ولی قدیم این بود واقعا طرف ننگاری که غروب شد یه مقدار هوا تاریک میشد این تب نوبه میآمد تا نزدیک صبح این طب می کرد باید پاشویش میکردن چیزهایی که تبر باشه بهش میدادند و قیل و غیره نزدیک نزدیک که میشد یه عرق شدیدی میکرد بعد آروم میشد بدنش یخت میشد خواهش میگرد دوباره اول غروب دوباره همین داستان تکرار میشد که حالا یا سیستم ایمنی غلبه کند یا این ویروس‌های داخل غلبه کنه و این شخص زعیفتر و ضعیفتر بشه سیستم ایمنیش تا موقعی که تا به کما میرفت و از بین میرفت این, این آمدن تب در اول شب و رفتنش در آخر شب و خیس شدن بدن از عرق و سرد شدنش برای متنبی اتفاق افتاده اما اینو نمیاد به شکلی بگه که ویروسها وارد بدن هم شدن سیستم ایمنی باش مقابله کرد فلان وفلان اینا اعمال اصول علمیه میبینی چی میگه میگه و زائرتی. این واب واب ربه است ر و زائرتی. یعنی و زائرتن لی زائرت ایایه این زارتی ثفت یک موصوف مقدره نوابان واو رقطس یعنی رب امرهتن زائرتن لی لام ترغیت یا ایایم چی میشه چه بسا فتاة انگار میشه بگی که معشوقی جوان ولی منظورش تبه زائرتن ایایم میگه چه بسیار شده ملاقات کننده ای من داشتم و زائرتي کهان نبه ها هیاون اسمی کهان نبه ها هیاون اسم کهان نزم شده به ها میگه چه بسا ملاقات کنندهی زیارت کنندهی من دارم که انگار خیلی خجالتی است گویا خیلی خجالتی است کهان نبه ها خب چی گفت این مثل اول؟ گفت من ملاقات کننده ای دارم محلس چون تب محلسه که لبه ها حیاء او یا معدن حیاء است انگار که در او حیاء مجسم است شرم و خجالت مجسم. خیلی خجالتی آدم اگر این دیکر رو بخونه فکر میکنه این یه معشوقی داره اون معشوقش به ملاقات این میاد و خیلی هم به قول خودمون خجالتی است و از این افراد که نیستش که براش مهم نباشه کی ببینه کی نبینه خیلی خجالتی که انده ها هیا این فر فا نتیجه از تفریه بنابراین چون خیلی این ملاقات کننده من اهل هیا و خجالته فلیست تزور و اللافز زلامی پس ملاقات نمیکنه من رو مگر در تاریکی شب فزلام یعنی فی زلام اللیل در تاریکی شب فزلام یعنی فی لیل فقط در شب ها میاد سرابان چون خواهد نبیننش دیگه آن یه نفر این شعر رو بخونه که یه معشوقی داره اون معشوق جوان و واقعا عشقش عشق اشخ درست و حسابی و این آدم ماش... این آدمی که معشوقی دارد معشوقی دارد بسیار خجالتی و او شبها سراغهی میاد فلیسه تزورو این لیسه اسمش زمیر شهنه توش مستطره بنابراین شهن سخنینه که لیسه تزورو یعنی لا تزورو، یعنی لا تزورو نی الا فزلام فزلام از زلام یعنی الگ فقط در شعبها میاد هنوز الان داره چی میگه؟ میگه من ملاقات کننده ای دارم که این ملاقات کننده خیلی خیلی خجالتی چون خیلی خیلی خجالتیه پس فقط به دیدن من کی میاد؟ شب که دیگران نبیننش خجالت میکشم پایین نگاه کنید چی میگه؟ حاشیه یک الوابو وابو ربب ای ربب زائرتن لی این لام لامه تقریهته یعنی زائرتنی ایایه چون زاره یزوره متعدیه این لام برای اینکه که اسم فایله و اصل این لام آوردن تا تقویت بشه مثل مصدقن لما بین یدهی فعال لما یورید لذا میشه چه بسا ملاقات کننده ای مرا یورید به حاضح زائره الهم منظورش از این زائره تب و کانت تعتیه لیلن و او سراغش میاد شب شب صراغش میاد و کانت تأتیه لیلا یقولو کأنها فتاتون گویا او دختر جوانی است ذات و حیاین خیلی خیلی خجالتی با حیا فهیه تزورنی پس بنابراین او به ملاقات من میاد تحت سواد لیل در زیر سیاهی شب کسی همه اینو بخونه نمی فهمه که فهمه میگه من یه ملاقات کننده یه محشوقهی دارم که این عاشق منه ولی خیلی خیلی با حیاست بنابراین فقط شبا اونم تو تاریکی شب میاد به دیدن من. حالا اگر یه کسی محشوقهی داشته باشه با حیا و او شب به ملاقاتش بیاد چی میشه میگه بزلت تو لحل مطارف و لحشای فعافت ها. آفت خواهد به جای بزن تو لحاظ و باتت به ای ازامی میگه بزن تو بهش بخشیدم تعارف کردم لها به این معشوقه به این ملاقات کنه مثل کسی که بیاد به ملاقات آدم بیاد میهمان آدم بشه خودم چکار میکنه یه زیرانداز براش میذاره یه پشتی میذاره میگه بفرمایید آه بهترین جا رو میده میگه شما بشینید بفرمایید استراحت کنید تا پذیرایی کنم از شو میگه بزن طول حل مطارف و منم زیرانداز ها و پشتی ها رو براش آماده کردم بفرمایید بشینید المطارف جمعه مطرف جمع مطرف کم با کرم و هو ردا من خز زیراندازی از جنس خز الحشا یا جمع حشیه وحیل فراش المحشوب متقاهایی که پر میکردن زیراندازهایی که پرش میکردن از ابر چیز از پر و امثال او میگه من این متقاهای پر و زیرانداز خز رو برای او گذاشتم بزل دوله ها المطارف و الحشایان یعنی مطارفی و حشایان زیراندازهای خودم رو متقاهای خودم رو جای خودم رو اتاق پزایدائیم رو بهش تعارف کردم هر مطارف مفهول وزن دست یعنی کرهند زد کنالی نارو نپسید فعافت خو. گفت من نیمدم که بشینم من نیمدم که تکیه بزنم فعافت خو. ها برمیده به مطارف و حشوی همه قبول نکرد و باتت فی ازامی و من اومدم به تو برسم آه من عاشق تو هستم من آمدم به تو که معشود منی محبوب منی برسم لذا و باتت فی ازامی با یعنی بیتوته کرد شب رو به صبح رسون فی ازامی در استخانه من این تب میره واقعا من اینطوری آدم این احساس میگه استخانه داره میتره و باعتد فی ازام گفت من اصلا با اینا کنم من نمیخوام بشینم نمیخوام تیکیه بزنم من رو میخوام میگه اومد رفت تو استخانه من کی؟ این معشوقه این کسی که من محبوب او هستم و باتت فی اضامی ازامی. فی متعلق به باتت باتت یعنی بیتوته کرد یعنی شب رو به تو صبح بود شب تو صبح تو سخونهای من بود آفتها پایین میگه عبتها ابا یعبا یعنی ابا کرد کراهت یعنی کرهتها نخواست خوشش نهید عبتها یقول حاضر زائرتو ایل هم ما لا تبی و فلفراش و من جا انداختم متکا براش گذشتم تکیه گازه گذشتم که استراحت کنه اون نه اون اصلا نمیخواست بیتوته کنه در لخت خواب و این نما تو ازام بلکه میخواست در استخوانهای من اومد رفتونم حالا چی شد؟ تصویر داره میگه که یه معشوقی اومد خجالتی شب میاد اومد این بهش پیشنهاد کرد که بفرمایید استراحت کنید اون گفت نه جمع چه رو من تو رو میخوام اومد و حلول کرد تو استخونای من حالا چی شد یزیق الجلدو ان نفسی و انها یزیق الجلد حالا این پوست من این پوست من که من داخلش بودم یزیق و تنگ شد ان نفسی از اینکه که هم منو جا بده تو خودش و انها هم اونو چون اومد هلول کرد در استخونای من حالا ما دو نفر شدیم تو یه پوست مثل اینکه دو نفر برن محکم با فشار در کیسه خوابی که یه نفر از خود نمیشه دیگه خیلی فشار. میگه اومد لفت توی پوست من پوست من تنگ شد راست میگه واقعا کسی که این طب میکنه احساس میکنه که داره میترکه میگه سگر سرم داره میترکه ها تمام استخونهاش احساس میکنه باد کرده و الانه که به ترکن میگه یزی جلده ان نفسی و ها میگه چرا اینطوری شده که من احساس میکنم داره منفجر میشم میگه چون اون اومده معشوق با من دو نفری رفتن تو پوست من از سر محبته خب فتوسه اوهو. پس اون معشوق اون ظاهره پوست منو وسعت میده به انواع سقام پوست منو وسعت میده به واسطه انواع دردهایی که ایجاد میکنه یعنی واقعا طرف احساس میکنه این طبی داره و از نوک انگشت پاشد تا موهاش داره درد می میکنه میگه چرا همه این پوست بدن من که کل بدن من رو پوشون درد میکنه میگه چون از درون داره بهش بشه مثل باد کنن که بادش بکنی هی که باد میکنه پوستش وسط پیدا میکنه در میشه هی فشار بیشتری رو تحمل میکنه و توسه و پس وسعت داد به پوست من به واسطه انواع با انواع دردها و رنج هایی که برای من ایجاد نگاه کنید پایین میگه یقول و جلدی یزیق و انعن ان یسع انفاسی و یسعها پوست من تنگ میاد از اینکه که هم من رو جابده تو خودش هم او رو فهیه توضیب و جسمی پس او جسم من رو آب میکنه و توبست و جلدی و جلد من رو توسه و توبست رو گسترش میده به ما توسیب و بهی. با آنچه که اصابت میدهد به این پوست من من انواع سام از انواع درد با انواع درد با رنج و زحمتی که ایجاد میکنه مثل کسی که یه جای تنگی بیافته بزنه به این طرف بزنه به اون طرف بزنه به جلو بزنه به این من تا خودشو جا بده بزرگ میانم همینطوره بزرگ با تنگنا فلان بیزن پدر منو درمیاره در میاره تا این پوست من توی قالب من جا بگیری ما الان شدیم دو نفر در یه پوست چیز تصویری دار وانی الان نقاشی کنی. خونه متنبی رو بکشیم یک معشوقهی در دل شب که خیلی هم خجالتیست این برون برون میپار در دل شب که کسی نبینیم خونه ای میشه این بهش میگه بفرمایید بشینیم این در خدمت شما هستیم. بشینید روی این زیرانداز تکیه بزنید به این پشتی که پشت شما میگه نه اینا رو میریز کنار میاد یک بار هولول میکنه. می من برای گرفتن تو آمدم من تو رو میخوام. هولول می‌کنه در این. وقتی دو نفر در یک پوست میشن این هی کوشال میشه این پوسته وزعت پیدا. در در در مثل اینکه شما دستتون یه جای بخوره باد کنه. این ورم بکنه شما در ده برامرش بعد چی میشه میگه میاد این عاشق به من معشوق میرسه و در من حلول میکنه چون خیلی خجالتی هست تا آخرین ای که میتونه از من که معشوقش هستم لذت ببره و در کنار من باشه هست کی فرصتش تمام میشه آه میگه صبح که الصبح از صبح گویا صبح در تغییب وست چون صبح بشه، که بشه انگار که میبیننش که اومده بوده پیش من که ان صبح گویا صبح اون شب داره اون رو میکنه تحت تغییب خوچکار میکنه فرار میکنه نزدیک صبح که میشه برای اینکه دیده نشه میگه در میره این مشروع. این خجالتی فرار میکنه خب حالا هر کسی که از محبوب خودش جدا میشه چجوری جدا میشه؟ با چشم ها؟؟ میگه فتجری که انده صبحا فتجری مدامه اوها جاری میشه ها؟ عشق های او جاری میشه به اربعت انسجامی از چهار نقطه منسجم پی پشت سر هم. چون ببینید شما وقتی اشک چشم یک لبن گریه میکنه از این بغل چشمش میبینید داره عشق مقبارین از این بر و از این بر. ولی وقتی اشک زیاد باشه چون دو تا گوشه چشم داره از هر دو گوشه میاد میشه عربته میگه از چهار گوشه چشمش به طور منسجم شروع میکنه به عشق ریختن این کدومه این تصویر اون که داره صبح حالش خوب میشه و عرق شدید میکنه نمیگه عرق به خاطر اینه که بدن میخواد خنک بشه بدن میخواد تبش بریزه و مقابله با اون گرمایی رو داره میکنه که در این کارزار با میکروب داشته نه میگه این معشوق داره میره انگار باد بدنم خالی میشه انگار احساس میکنه پوستش جمع شد اون به خودمون که بدن داشت درد میکرد باد کرده بود برم کرده بود احساس میکرد بعد میبینه خوابی بعد میبینه خی سهرخ شد بعد میگه این عشقهای اونه که با چارگوشه چشم داره گریه میکنه که اند از ها و تجری مدامه و ها و هر بعد حالا هر معشوقی که میره اینطور با چشم گریانم میره اون عاشقی که هست درست شو منتظر میمونه که یک بار دیگه او بیاد این محبوب یک بار دیگه برگرد اونم میگه من میرم همیشه اینطوریه دیگه هزار وعده خوبان اینجا وعده خوبان عمل میکنه اون داره میره میگه صبح که داره میره میگه من اول شب میام دوباره هوا تاریکشه کسی من نبینه میاد میگه اینو میگه و میره میگه منم از صبح که این میره حالم خوب شده ها هی چشم انتظارم که شب میشه دوباره این برگرد اراغب و وقتها من مراقبم وقت او رو که شب که میشه میاد وقت اومدنش رو هی گردنم میکشم براش. هی مراقبت میکنم وقت اومدنش. اما فقط فرق من با بقیه یا ای عاشقها اینه. اون بقیه یا عاشقا همچین خودرو میآرایند از سر شوق میگن که شب میشه که دوباره این معشوق بیاد، چشم انتظارن از سر لذت، از سر شوق. اما من اوراق با وقت ها من من بدون اینکه اشتیاق داشته باشم یه چشمی مالم که که میاد چرا چون میترسه احساس میکنه بدبخت میشه مراقبت هم مطلق و مراقبت میگه همون چشم انتظاری که مراقبت هم مشوق مشوق یعنی شوق زده عاشق، مستهام یعنی گیج اون عاشق گیج متهیری که بجز معشوق چیزی تو ذهنش نیست چه جوری چشم میماله برای دیدن معشوق چجوری جوری با قول خودمون شیفته اومدنونه منم, منم به همون مقدار هی در و باز میکنم هی به قول خودمون نگاه میکنم هی ساعتو نگاه میکنم هی اشتیاق نشون میدم منم به همون مقدار اشتیاق دارم اما او شوق برای آمدن داره من لحظه برای او به قول خودمون یک سال میگذره که چرا انقدر کن داره میگذره مخوام زودتر روی معشوق رو ببینم من میترسم هر دومون دلواپسه اومدن او هستیم وقت اومدنش رو داریم میبینیم یکی وقت اومدنش رو از سر شوق که اون عاشق است یکی هم وقت اومدنش رو از سر خوف منم ولی هر دومون یه نوع با قول خودمون انتظار برا اومدن یه نوع دل برا اومدنش داریم اراغ او با وقتها من غیر شوق مراقبت المشوق مستحامی یقول انهو و انهوی با وقت زیارتها خوفا لا شوقا کل اشنا مثل آشقهای دیگه نیست که از سر شوقش خب اینجا میاد میگه که حالا اون یه چیزی گفت موقع صبح که من برم هوا تاریک دوباره میام آه با حافظ هزار مرده خوبان یکی وفا نکنه میره اومد میگه نه بابا این از اون مشروعهایی هست که بگه میام میاد صد در میاد برای همین هستش که من سر ترس دارم هیچش میمالم که میاد و یستو وعدها ها و یه سقه و وعده ها وعده او راست در میاد بعدش وعده بده میاد راست میگه اون هزار وعده خوبان اون ماله کسان دیگه از این نه این اصلا میگه میان میاد اولش اومده و یه سقه و ها خیلی خوبه معشوق تو بگه میان و صد درصددم بیاد میگه نه بابا و یه وعدها عدده و, و شهر اینجا صدق و رازگویی او شره مثل اشاق دیگه نیست اون اشاق دیگه میان معشوق کیف میکنه معشوق از دیدن او گل از گلش باز میشه شادمان میشه من میترسم دوباره درد و بلاب و بدبختی سراغم میان و صدق و شر یعنی و صدق وها چرا این صدق این شر است میگه اذا القاك سلکر بنظام زمانی که صدق او راستگویی او تو رو میندازد در مصیبت های بزرگ دوباره بدن درد میگیری دوباره سردرد میگیری دوباره تمام مفاصل درد میگیره دوباره دست و پنجه با تب و اینها میکنی تا دم دوباره عرق و دوباره نحیف شدن. میگه صدق گفتار او بدبختی زمانی که این صدق و او آدم رو میدازه در کرب جمع کربه یعنی مصیبت در مصیبت‌های های عظیم ازام جمع عظیم هست یعنی بسید که این دبا کنید یورید و به وعده ها وقت زیارت ها منظور از میگه راست در میاد وعدهش یعنی وقت ملاقاتش همینطور دقیق درمه یقول یعنی و انها صادق اتون وعد. این معشوق من تو وعده خودش راستگوست لعنه ها لا تتخلف و انمیقات ها زیرا از وقت خودش هیچ ادون نمی کنه. و وزالکه وزالکه صدق و شر و این رازگویش شو وعده درست شر و بدبختیست برای من لعنه ها تستقفی ما یزار زیرا داره زیرا داره صدق انجام میده فیما تذار در چیزی که ضرر میزنه اراغب وقت وقتها من غیر شوق مراقبت المشوقل مستهامی و یستق و ها و صد و شربون ازا علقا که فرکرابل خب حالا اینجا آخرش یه جمله ای داره به خود اون تب خطاب میکنه به تب تعبیر از تب میکنه بنت و دهر بنت یعنی دختر دهر یعنی روزگار دختر روزگار میگن مایه و خمیر مایه همه بدبختی هاست هم چون مؤنث بهش گفته دختر روزگار گفته ای دختر روزگار ابنت در این ا همزه نداست ای دختر روزگار ای زاده روزگار به تب میگه حالا ما داریم میفهمیم و میگه ولی آره نفر فکر میکنه واقعا روزگار دختری دارد ها مثل که بگه امرن. ای دختر امر نگه ای دختر روزگار اندی کلو بنت من اندی پیش من کلو بنت خیلی هر معشوقه پیش من بود من معشوقه های زیادی دارم منظورش از معشوقه چیه؟ مصیبت بیچاره بیچارگی مثل اون تب چون تبه شده معشوقه بقیه مصیبتهام ها هم شدن کلوبنت گلته من خودم سر تا پا معشوقه های متعددی دارم ای دختر روزگار، ای تب من خودم هزار تا بدبختی داشتم اندی کلوبنته فکیفه وسلت انته من از دهامی؟ فکیفه پس چگونه؟ دیگه من خودم سر تو پا غرق در بدبختی و مصیبت بودم فکیف وصلت پس چگونه تو رسیدی انته تو من از ذهام یعنی من از دهام من ذهام از ازدهام این همه معشوقه که بر سر من ریخته تو یه دفعه از وسطشون چطوری سرکلات دادی تو چطور گَغه من گرفتی تو چطور تونستی از وسط همه اینها بیای و به من برسی تو دیگه کجا بودی این کیفه اینجا برای برا تعجبه فهمیچ میگه میگه ای خاک بر سر من ای تب که تعبیر کرده ازش به بنتدر ای تب ای دختر روزگار ای مصیبت من خودم سر تا پا غرق در مصیبت بودم تعجب میکنم تو چطوری تونستی از وسط اون مسیبت ها و و خودم کم بدبختی داشت. تو چطور همه اونا رو زدی کنار و اومدی یقه منو بگیر تو دیگه چطوری تونستی از وسط اونها بیای به من برسی تو چطور تونستی از وسط اون همه بدبختی بیای یقه منو بگیری خودام کم بدبختی داشتن تا اومدی یعنی شما میتونید از اون اولی داستان گفته برای این تب کردنش که شب تط میکنه صبح عرقریز خوب میشه ولی چشم انتظاری که الان شب میشه باز دوباره تب میکنه. این رو به شکلی نقاشی کرده که آدم احساس اصطورتون غزله. میتونه خونه متنبی رو نقاشی کنه بعد تبر رو بکشه به شکل یک ملاقات کننده میاد با حیا یواش یواش این روبر رو نگاه کنه وارد خانه میشه این بهش خوشامد میگه میگه پس میزنه اینو میگه من برای نشستن نیامدم من تو رو میخوام اینو در آغوش میگیره و هلول میکنه در استخانهای این این شروع میکنه دو نفر در یک پوست تمام بدنش باد میکنه و درد میگیره دست پا میزنه تو این اونم به قول خودمون هی پوست این رو گسترش میده این تو این استخان ترکیدن هست تا نزدیک صبح نزدیک صبح که میشه اون میفهمه که الان متش باز میشه انگار میان میگیرنش روشنی هوا باعث میشه دیده بشه فرار میکنه وقتی داره میره آه شروع میکنه به عشق ریختن از چهار طرف چشم که چرا داره از این جدا میشه از این محبوب خودش محشور خودش جدا میشه ما چشم گریان میره ولی یه چیزی میگه میگه اول شب میام تاریکشه دوباره میام بعدم این میزنه تو سر خودش منتظر میشه که اول شب بشه میاد هی نگاه میکنه هی مراقبت میکنه که حالا اول شب دوباره این میاد میگه بابا حالا کجا معلوم بیاد؟ این وعده خوبان هزار پشنگی یکیش میگه نه نه این میگه میام میاد میگه می خب این که خوبه اگه معشوق بگه میام بیاد میگه می می نه این مایه بدبختیه آدم به زحمت میندازه بعدم خطاب میکنه به این تب میگه ای تب من خودم کم بدبختی داشتم سر تا دا بود پام پر از بدبختی و بیچارگی بود از لای این بیچارگی ها تو چطوری تونستی تو ما رو بگیری تو چطوری من تونستی از لای این همه بدبختی پیدا کنی اما تعبیر کرده به این آدم این بیت رو بخونه فکر میکنه یک زیواروی یک با قول خودمون شخصی بسیار بسیار رعنا هزاران معشوق دور او هستند یک معشوق حمرو پس زده اومده یغه این رو گره. و این میگه تو چطوری تونستی رو پس بزنی و به من برسی ببینید این اسلوب اسلوب عثوی است ابنت در پایین نگاه کنید و به بنت الده القما و به بنات در شداعه ده منظور از به بنت یورید و به بنت الده و بنات در یعنی و به بنات در شدایده، و مصیبت‌های روزگار بدبختیش یقول لهم ما کل نوع علم انواع شدارید من خودم همه بدبختیارو دارم فکیف لم یمنعک چطور جلوی تو رو نگرفت ازدهام اونها ازدهام اینها من ال وصول از اینکه تو به من برسی چطور اینها جلوی تو رو نگرفت خب ببینید این اسلوب اسلوب است، بسیار زیبا بسیار زیبا خب این دیگه نمیاد تو اسلوب علمی باغشه و همینطور شما میتونید موارد دیگر رو هم ببینید اما نگاه کنید توی صفحه پونزده تو اسلوب ادبی. اسلوب ادبی صفحه پونزده شو رو نگاه کنیم. میگه و جملت القول خلاصه حرف و جملت القول ان غزل الاسلوب یجب ان یکون جمیلان راء خلاصه حرفمون تو اسلوب ادبی اینه که یجب ان یکون جمیلان راء هم بدیع الخيال این اسلوب واجبه که زیبا باشه قشنگ باشه رایه بدی الخیال نوع خیالی که توش از جدید باشه بدی باشه نعاوری توش باشه تو خیال ثم وزن هم قوی یا البته واضح باشه توش با قول خودمو ترقید لبسی معنوی نداشت خیال خود بعد نگاه کنید میگه و یزن ناشعون آدمهای تازه وارد و یزن ناشعون فی سناعت العدب اون هایی که در بلاغت صناعت عدب تازه وارد هستن یزن المجاز اینها فکر میکنن هر چقدر مجاز بیشتر باشه تو جمله حالا مجاز انواع افسام داره درست شد و کثرت تشبیهات و هر چقدر تشبیهات بیشتر باشه ول و خیال پردازی ها و تصویر سازی ها زیاد باشه فیاز الاسلوب زاده حسنه هرچقدر اینا بیشتر حسنش زیباتر هرچقدر استعاره مجاز کنایه اینا توش بیشتر تشبیحات بیشتر این زیباتر یه این غلطه یه این آدمای های تازه وارد. اونهایی که بلاغت رو نفهمیدن فکر میکنن که اینطوری باشه بهتر و حاضا خطاون بگی این خطاز غلطه. چه بس ها شما لازم باشید مثلا شما دارید برای فرض کنید شهردار محلتون یه نامه می‌نویسید که قول خودمون این کوچه ما برق نداره روشنایی شب نیاز هست و کوچه ما آسفالت هم نداره و اسباب زحمت به شهرداری محل میخوای بنویسید بیان سیستم نورش و سیستم به قول خودمون آسفالت اون محله و کوچه رو داشتو شد و خیلی روان بنویسید. بیسی سلام علیکم شهردار محترم منطقه فلان این جان فلانی ساکن محله فلان به استهزار می رساند. محله ما فاقد نور و فاقد آسفالت می باشد. و از این جهت اهالی محل استدعا دارن لطف فرمایید دستور بدید بیانج خیلی ساده ولی حالا شما بیا این رو ببرش تو اسلوب ادبی تشبیهات بذار استعاره ها بذار کنایه ها بگذار صنعت مختلف بدیعی توش سن. این نیستش که اما اگر آمدی برای یک عدیب شاعر بزرگی در جایی که او جایزه ای رو برنده شده به عنوان مثلا فرض کن کتاب شهر سال شما برای او میخوای تبریک کنید یه جاشه که از استهاره استفاده کنی از کنایه استفاده کنی مجاز استفاده کنی عدیبانه به این این مهمه شما باید بدونی که کجا چی استفاده کنی لذا در روایت هم هست محنو معاشر الانبیاء محنو معاشر الانبیاء امر نا انو کلمن نا سلاوت ما انبیاء موظفیم با مردم صحبت کن با زرشون اینجا میگه چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گوشد یعنی بلاوتی نه تو نمیتونه بیای با یه ای که مثلا پنج شیش سالت با زبان سهدی صحبت کنی پس بنابراین این که شما فکر کنی هرچی تشبیه مجاز کنایه بیشتر این زیباتر اینطور نیست و هازا خطا باید فنه لا از همو به جمال هازل اصلوب اکثر من تکلف زیبایی این و ادبی را از بین میبره وقتی شما زور بزنید تکلف یعنی به زحمت افتادن برای این که شما سنعد ببین نشستی به زحمت افتادی استعاره درست کنید تشبیه درست کنید. نه تو باید اینها بجوشه بیاد مطلب تو بگو و اینقدر ملکه در بلاغت داشته باش که خودش به حد اندازه میجوشد و میآید و الا زور بزنی بخوای زیبایی ظاهری درست کنی این جز اینکه زشتی بیاورد نیست ولا یبصد هوشرن بنت عمد صنا هیچ شرعی فاسد نمیکنه کلام رو جز اینکه شما داری تعمد میکنی که صناعه صنعت ها رو بیاری صنایع بدیعی رو بیاری نه خودش باید صنعت مختلف بدیعی بیاد و دو انه لا یعجبک قول شاعر الان ببینید میگه این شاعر قولش ما معتقدیم که تو رو شیفته نکنه این شاعر توی کتبی که هست یزید ابن ماویه علیه اللعنت و والحاویه هستش یک معشوقی داشت نصرانی و یه بیتی از این غزلگونه او رو داره بیان میکنه ببینید وقتی که سراغ معشوق میره بعد که داره خداحافظی میکنه بیاد بیرون این وعده این موقع ودا اون معشوق گریه میکنه این گریه ها بر روی گونه او عشق ها می غلطه و انگشتان خودشون این سرانگشتانشون ناخونهاشون زیر دندان گرفته و به خاطر هرس و به خاطر اون با قول خودمون گیزی که دارد از اینکه که داره عاشق از کنار او میره و محبوب از کنار او میره این رو آز می چهره ای از یک معشوق به هنگام فراغ دم در وای داره با چشم گریان میگریه هنگشتاش رو این هنگشتاش رو گذاشته زیر دندنهاش آه، داره از حرسش این سر رو گاز میکره که چرا این داره از پیش من میره خوب اینو داره میکره خب این میتونست بگه ما اینطور بگه به هنگامی که من از او جدا شدم به هنگام وداع در دم در او با چشم گریان مرا بدرقه میکرد عشقا بر گونه های او میغلدید و سرنگشتان زیبای خود رو در زیر دندان های خود از خشم نسبت به این لحظه میگزید اینطور بگو و ما, و ما آمده نگاه کنید چی میگه؟ میگه امترت یعنی بارید اون خانم انگار اون خانم عبره و میبارد اینجا تشبیه آنه نمیخونیم استعاره ها هست تو تشبیه ها تشبیه ها هست بعد این رو میگیم که چی توشه پنششت تا استعاره توشه میگه تر از توی لولا اون خانم تشبیه شده به عبر عشقاش تردشبه شده به لولا میگه او اون خانم مثل ابر بهاری عشق میری ایش عشقایی که مثل لولان. من نرجسم من نرجسم این مثل عبر بهاری میبارید عشق هایی که مثل لغلو گوهر بود از نرگس از چشم های زیبایی که مثل گل نرجس بود چشم زیبا رو تشکیم کن به گل نرجس پس خودش تشبیه شد به عبر عشق هاش شد به در و گوهر و این دو گوهره از کجا فرو میریزد از چشمهایی که مثل گل نرگس و و سقط وردن و آبیاری کرد مثل ابر که آبیاری میکند زمین های خشک رو این هم سقط وردن و آبیاری کرد این خانو وردن گل سرخی را منظورش از این گل سرخ که این گونه شد میگه عشقا اومد روی گونه او گونه ای که مثل گل سرخ گونه های سرخ او رو خیس کرد و وقت و از زد از زد یعنی جزید گاز گرفت و از زد و گاز گرفت علال اون بر اون ناب ها منظور از اون چیه؟ مثل دانه سنجد خیلی خوش رنگ و سرخ و این این سرنگشتان زیبای اون رو که هنها گذاشته بود رنگ کرده بود ناخن‌ها رو تشبیه کرده به اون ناب میگه جزید انناب ها رو با چی جزید و عزت علل اون ناب بلبردی. برد دانه تگرگه دندان‌های های زیبا رو تشبیه میکنن به دانه تگرگ میگن دانه های تگرگ وقتی که میفته اولش که میفته سفید سفید یه لحظه بعدی یه آنت نقره ای پیدا میکنه دندان بروشه از زیباتر از همه چیز از رنگش دندان هایی که مثل تگرگ بود پس ببین او حمچو ابری بهاری گریست اشکهایی که مثل در و گوهر بود از چشمی که به زیبایی گل نرگس بود و بعد خیست کرد آبیاری کرد گونه ای را که همچو گل سرخ بود و بعد ویزید و گاز گرفت بر سرنگشتان خودش که همچو میوه ناب، و ناب خوشونگ و زیبا بود با دندانه ها ای بر این اون ناب که این دندانها ها مثل دانه های تگرگ زیبا و خوشتنگ خب ببینید این همه استعال جمع کردن این همه استعال جمع کردن زیبا نیست که زیاد شده خب مثل کسی که انگشتر زیباست، الانگو زیباست اما بیش از حد استفاده کن هر جایی اندازه ای دارد دیگه برای پس بنابراین آدم های ناشی هستند که بگم مثلا ما اگر من درس انشا بدم به عنوان کسی که بلاغت ممکنه به شما بگم شما برای مثلا استاد ادبیات فارسی و خودتون که ورز به که افتقای مقام پیدا کرده و کتاب شعر رو چاپ شده یک نامه بنویسید با مثلا فرض بخواهد شعری که شما برای معاون آموزشی دانشگاه مینویسید که اجازه دهد شما به خوابگاه وارد بشید این دوتا وقت میکنه درست شما پس بنابراین این ما یاد بگیریم که در اصلی و ادبی ها آرایه ها خیالات، متانث اینها ابزارند. ابزارند. یه جایی شما این ابزار رو به کار میگیرید، یه جایی هم لازمه به کار نگیرید و هر کدوم از این ابزار حد اندازه ای داره. این میشه همون مطابقت با پس بناوری استفاده ای از این ابزار، این ابزار باید ابزار درست باشه. درست شد؟ می ابزار و ابزار درستی باشه صحیح و فصیح باشه بعد مطابقه با مفتضای حال مخاطب باشه اندازه باشه تمام این اسلوب ادبی بود اما بیایید سر اسلوب خطابی اسلوب خطابی شاید سختترین اسلوب باشه بین این دو چون تو اسلوب علمی شما اصلش اینه که اون علم و بلد باشید چون ریاضی رو بلدی پس بنابراین اگر بتونی روان بنویسی ها آه؟ بتونی آهین نگارش صحیحی داشته باشی و شکل روان و خداموز بنویسی بلاغت کامل در اسلوب علمی داری اسلوب ادبی هم خوب قوه خیال و خوندن شعرهای دیگران و استعداد در این زمینه پیدا کردن و مخاطب شناسی و ولی این دوتا به شما یه فرجه میده یعنی در اسلوب علمی و اسلوب ادبی شما یه ای داری چرا چون مینویسی شعر رو بعد میخونی بعد میتونی به دیگرانم مشورت بدی میتونی اصلاحش کنی میتونی ویراستاری کنی کلماتش یعنی به شما این اجازه این اسلوب میشه اسلوب علمی و اسلوب خطا اسلوب علمی و ادبی در واقع به شکل آفلاینه شما میتونی پس و پیشش کنی میتونی یعنی به شکل زبطی انگار به شکل نگارشیه که شما نگارش میکنی بعد که کامل غلطاشو گرفتی اصلاحاتشو انجام دادی میدی می اما اسلوب خطابی مثل برنامه زنده است از برنامه زنده است شما دیدید یا نه کسانی اصلا مجری غیر غیره و اینها تو برنامه, زنده، تو برنامه های زنده ماجری هستن، اونها تو های آنلاینی وقتی اصلا خیلی قوی فلان غیره و اینها چرا چون ممکنه 10 باری فلان رو گرفته باشن این بالا پایینم گفتم رسم میکنن اونی که از همه بهتر در میاد اون رو میذارم شما می‌بینید به بهتری شکل هست. اما اونی که برنامه زنده اجرا می‌کنه خیلی در معرض خطر چه بسا یک تلفظ غلط یک اشتباه یک بالا پایین شدن اصلا همه چیزش رو به باید خیلی خسته کننده تره خیلی توان بالاتر میخواد اسلوب خطابی اینطوری حالا آیا ممکن است یک نفر هر اسلوب رو داشته شده ممکنه یه نفر واقعا هم اسلوب علمی خوبی داشته باشه تمرین کرده همه چی با تمرین میده اسلوب ادبی خوبی داشته شد. اسلوب خطاب. ولی یه موقع هست میبینید یک نفر اسطوب ادبی خوبی داره مثل سعدین میبونه خوب میدیمیسه فرانه ولی اگه بهش بگی برو بالای منبر خونه. یه نفر میبینید منبری خیلی خوبیه اسطوب خطاویش عالیه اما بگو اگر بگید بیا بشید بنویس قدمش قلمش باشه. اما یکر میبینید هر سه رو داره دو داره، رو داره بستگی داره به تمرین به اون چیزی که گفتیم ملکه میشه حالا اسلوب خطابی یه سری مشخصات داره مشخصاتش اینه حونا تبرز و قوت المعانی و توان معانی و الفاظ اینجا بیرون میاد، اینجا بروز میکنه و قوت الهجت و توان استدلال اینجا مشخص میشه. و قوت العقل الخصیب و توان عقل خاصل خیز عقلی که میتواند رشد بده نماف بده عقل کامل اینجا سرکرنش میدار درست چرا چون وحنا یتهد ختیب خطیب الى ارادت سامی اینجا خطیب با اراده و تصمیم شنوندگان صحبت منو ها گوش کنید مثلا من رو دعوت میکنم میگن آقا بیا شما برای این دانشجویان سال آخر صحبت کن که اینها ترغیب بشن تشویق بشن که بخوانند برای اینکه در کنگور ارشد قبول بشن و پیشرفت کنن و خوب یا من رو دعوت میکنن شما بیا برای این خیرین صحبت کن که اینها بقول خودمون به ایتام که الان خیلی زیاد شدن کمک مالی کنن، دستگیری کنن. موضوع این شد که من بیام صحبت کنم، خطابه داشته باشم، سخنرانی کنم برای اینکه اینها کمک کنند به به ایتام،, ایتام، رو دریابن. حالا اگه سخن من میخواد اینجا اثرش معلوم بشه اینه که وقتی که وقتی سخن من تمام میشه اینها از در سالن میام بیرون همه دست میچید بشن همه تحریک بشن مثل بعضی از افرادی که سخن میگن برای رزمندگانی که در میدان جنگ بودن تحریک میکنن اونها رو چون وارده به این مطلبن اینها میآیند و در حمله شرکت میکنن دشمن رو سرکوب میکنند. این اثرش باید پیدا شد چون اینجا شما می‌خواید احساسات اراده شنوندگان رو به دست خب. گوش کنید پس بنابرای ما داریم سخن میگه با اراده می‌خواد، اونها رو لعسانه ازائمه هم و استنهاز هممه هم میخواید برنگیزانه اراده های اونها رو و به پا بدارد همت هاشون پاشن پاشند اراده حالا این اسلوب برای اینکه خوب جا بیفته این اسلوب خطابی یک سری مشخصات داره یک لجمال هازل اسلوب و و وضوحی شهنان کبیر بیتحصیل و وصولی الان قرارت نفس. برای اینکه این اسلوب تاثیر بذاره در روح شنوندگان و اونها رو تحریک کنه، اولین چیزش اینه که اون شنونده که مشنوه گونج براش ن کاملا واضحه بشه. برا اون شنونده واضح باشه. اگه قرار باشه دو کلمه از این ور نمیفهمسته کلمه اون ور نمیم، قلم به سلوم به بگی، نفهمه که مثلا بگه بخواد بپرسه این منظورش چیه، نه با کاملا سخن واضح باشه. برای جمال این اسلوب و وضوح این اسلوب، به جمال حاضر و وضوحی این شهنان جدید. یه شهن بسیار است در تأثیرش و وضوحش به قرارت نفوس. ته دل قرارت نفوس. برای اینکه به ته دل شنوندگان بشینه باید خوب بفهمنش. پای صحبتی کسی میشینن که حرفشو خوب میفهمن. بعد نگاه کنید خب پس اولیش اینه که من سخنران به گونه ای سخنرانی کنم که در دل خودم کاملا بنشیند و اونها بفهمنش درست شد در دیدید میره پای یه منبری پای یه صحبت نشینان میکنیم که خوب چی میگه دوتا کلمه سه تا احساس میکنه که درک نمیکنه چی میگم میگه احساس وا زبان این و زبان خطیب باید صد در صد برای اونهایی که پای او رو هستن روشن و واضح میشون. این مطلب هم. بعد از ممن ما یزید این تأثیر حاضر استوب از چیزهایی که تأثیر این استوب خطابی رو بالا میبره منزلتال خطیب جایگاه خطیب ممکنه الان شما من دارم این درسو برای شما میگم شما میگهد خب این سال هاست داره این تدریس رو میکنه همه میگن مثلا یه جایگاهی پیش شما دارد خب میشینید اما اگر همین رو انسان ناشناسی بیاد مثلا چی کنه ممکنه خیلی لذا مردم خطیب باید برای خودش یه جایگاهی ایجاد کنه در نزد شنوندی ببینه قبولش داره اون به قول خودمون مشروعیتی داشته هرچقدر خطیب مشروعیت داشته باشه جایگاه داشته باشه تأثیر سخنش باشه، مردم بهتر حرف شکن پس از چیزهایی که تأثیر رو بالا میبره جایگاه خطیب است در روح شنوندگان دبین منزلتون خطیب و قوت و آرزتی حالا درست منزلتی دارد این خطیب موضوع بیانم باید داشته باشه که کاملا نرشد اما قوت و آرزتی توان بیان میکن این آقا مثلا فرض بفرمایه که وزیر فلانه این آقا نماینده فلانه این آقا مثلا استاد دانشگاه صربانه، خب این منزلتی پیدا کرد اما وقتی میشنن قوه بیان نداره قوه بیان یه چیزی خودش یه ماهیته خودش یک حقیقته جوریه که وقتی داره بیان میکنه ها توان بیانش گوشنوازه قوت و آرزتی توان بیانش اونو داشت روش و سطوع و هججهی سطوع یعنی روشن، روشنی هج... آقا استدلال داره میکن مثلا میخواد بگه که آقا به یتیم باید کمک استدلالاتی که میاره از قرآن میاره از نه جربلاغه میاره از سیره حیمه میاره از سخن بزرگان ادبیات میاره چیزهایی رو داره بیان میکنه که کاملا روشن استدلال به اونها میکنه و روشنی استدلالش و سطوع و جتی، باز از چیزهایی که لازم است یه خطیب داشته باشه نبرات و سطوعی بالا پایین با رفتن صداش شده شما حساب بگی من درس به شما میگم از اول که میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بلاغت در نزد علما به دو دسته تقسیم می شود بلاغت در کلام بلاغت در متکلم و بلاغت در کلام و از همینطوری شما بذارید رو یه خط رو دو دقیقه که طرف میشینه قصه میشه خسته میشه می سخنران گاهی صداش بالا میده گاهی این اوقات... ای صدا بالا میده داره تحکید می باشه. گاهی اوقات صدا پایین میاد ها یه نظر داره گاهی اوقا داره روی یه خط مستقیم میره یه نظر یعنی یک موسیقی ایجاد کرده بعد از همه مهمتر نبرات صوتش نبرات یعنی بالا و پایین لختن این صوتش گوشنواز میشه برای شنونده شما یه موسیقی رو همش مثلا لفت کنید یکی با یه خابلما جلو دو تپ تب تب تب تب تب تب میزنه یه آقا بخار ولی شما وقتی نگاه هم کنید یک موسیقی هست داره می نوازه یه جا صدا بالا، یه جا پایین، یه جا به هم نستی که این ضربه یه جا دور میشه این نبرات صورته گوش نواز بودن صداش. و حسن الگاهی حسن الگاه یعنی زیبایی رسوندن پیامش خوب بیتونه مطلبش رو برسونه و حسن الگاهی و محکم و اشارتی هی. اگر اشاره میکنه تو صحبتش به چیزی انقدر اشاراتش دقیقه مردمه منظور چی بود؟ نه نه, نه چون کسی که نشست اونجا وقت نداره که از این به بپرسه منظورش از این هرچی چی, برونه. چی, برونه. چی از اشاراتش در خطیب اشاراتی کاملا باشه از اول تا آخر ببینید چقدر جای جایگاه باید داشته باشه، بیانش باید کاملا موسیقیوار باشه، اشاراتش باید روشن باشه، دلایلش باید کاملا واضح باشه برای شنونده. حالا نگاه کنید از مهمترین مشخصه های این اسلوب تکراره شما منو دعوت کردم برای اینکه به ایتام کمک کنم برای این صحبت کنم شما و موضوع صحبت اینه شما وقتی کسانی که پای منبر من نشستن پای صحبت من نشستن نگاه کنن میبینن از اول تا آخر حول یه محور داره میچرخه هی hey, تکرار میشه که شما ایتام را دریابید و به آنها کمک کنید. در از این، اینو میخوام تو ذهن شما به اما اگر بیام از دهغه اول تا آخر باید بگم شما ایتام رو دریابید، شما به فکر ایتام باشید. شما ایتام را در بین خودتان زایه نکنید. ایتام را مبادا از دست دهید. و و و و اما خطیب میاد همین کارو میکنه تکرار میکنه اما تکرارش کش نبازه یه جا میاد ایتام رو تعریف میکنه بعد ایتام رو شروع میکنه به لزوم یتیمداری بعد میاد سیره یتیمداری در بین بزرگان بعد میاد سفارشی که بزرگان برای یتیمداری کردن بعد میاد فواید یتیمداری در جامعه بعد میاد آخرش همش میشه یکی تکرار پس از, از مشخصات این اصطور تکراره و استعمال المترادفات مترادف خیلی زیاد به کار میره و این مترادفات رو به کار بردن خب اگر بخواد تکراری باشه مثل همون تق تق تق, تق زدن خوب خاصه کنند میشه و استعمال اما این هنرمندانه و استعمال المترادفات. و ضرب و رمسال. شبا گام کنید تو سخنرانی توی چقدر سربال مسل بکنید امثال مثال های متعدد میاره این مثال ها رو چی میاره باست اثبات کنه مطلب اول یتیم داری یه مثال از امیر میاره یه مثال از امام حسن میاره یه مثال از امام رضا میاره در رابطه با یتیم داری و ضرب الامثال وختیار کلمات الجزلت ذات این شخص در سخن خودش کلماتی رو استفاده میکنه که شیواست جزده زاترنین آهنگینه آدم وقتی نگاه میکنه به سخنرانی او خوشش میاد احساس میکنه انگار داره موسیقی زده میشه <تصفيق> کلماتی داره همشون دارای بقول خودمون وزن آهنگ جملاتش جملاتیه که به هم قفل شدن قشنگ و, و یه سنو حتی آقا با زروب و حالا جالب ببین، خوبه که در یه سخنران در سخنرانی خودش زروب انواع تعبیر رو تغییر بده می‌بینی که شروع میکنه به شکل استفهامی بیان آیا شما در فکر ایتام جامعه خود هستید؟ آیا شما احساس مسئولیت نسبت به اداره آنها میکنید؟ در استفهام بعد یه جامعه این اسلوب رو تغییر میده. به اسلوبی مثلا تهذیری داره. مبادا ایتام در بین شما باشند و شما از آنها غفلت کنید. که مورد عقاب خداوند واقع بشید و براید. این هم همش جملات خبری نیست. جمله انشایی داره استفهامی داره. جملات تحجبی داره. داره بیان میکنه. انوا، انواع و یخ ساتیه مثل یک موسیقی که هم توش مثلا سنتور میزنن هم توش میولون میزنن هم توش سازه دیگری رو می نوازن، هم دف میزنن گاهی اینا با هم میزنن گاهی تک میزنن گاهی نش میزنن این داره اموا و بعد مجموعش یک نوازشی رو آدم احساس میکنه که گوش نوازدقطعا و ظور من اخبار الا استفان. از جملات خبری یهو به جملات استفان الا تعجبن الا استنگارن گاهی اوقات میرسه به جایی که میگه آیا خجالت نمی که اون جامعه ای که یتیم در اون جامعه ضرف کنده هست بعد میگه مهند تکونم خیلی مهمه توی اسلوب خطیب که مواطن وقف و ابتدا توش خیلی زیبا باشه. مواطن وقف و ابتدا. مواطن وقف و ابتدا. یعنی من یه جمله ای رو میگم به شما. وای آیا شو صحبت های من مثلا در آتون رو نگاه بکنید. چون اینقدر ما توی این کار چیزه روی خب مایه توی این مای استعداد ملک باری پیدا کرد. شما نگاه هم میگه میگه یه جایی میبینید در حد مثلا فرض کنید که یک ثانیه دو ثانیه ساکت شده دوباره شروع کرده این وقفا و ابتداها اون شنونده رو مادار میکنه مطالب رو بایگانی کنه اگر شما یه موقع دیدید اخبار گوش می‌کنید یا اخباری برای خاطر اینکه وقت که من داده دمش طول طول داریم هستی میگه خانمستون بابا ببینم خسته شدم چی میگه ا یعنی چرا به دلی که تو احساس می‌کنی هی داره مطلب میده مطلب میده ذهنت باید اینها رو بعضیش رو کنه پاک کنه به دور نمیخوام. بعضیاش رو بگیره بعضیاش رو پالایش کنه طبق... اینها این کار باید به شما اجازه بده میده مثل چی میمونه مثل این میمونه شما یک ای داری خب برای شما بار میارن که شما تو این داروخانه بچینید داروخان یه موقع از این داروها رو طبقه به خودمون یک نظم و نسقی میارن و به شما فرصت میدن یه کارتون که آوردن این رو در جاهای مختلف بچینید اونایی که نمیخواید ارجا کنید برگردونید اونایی رو که باید بفرستید انبار بفرستید انبار هی میارن و شما هم خسته نمیشی داری بایگانی میکنی اونایی که باید مثلا فرض کنید وقتش تاریخش کمه جایی بذاری که فلان، اونی که نیاز داری به فسی هم بار بفرسید. این داری هی hey, بارت رو تحمیل میگیری و توی قفسه های مختلف میچینی بایگانو و بعضی هران مرجون میکنی برمیاد نمیخواید خسته نمیشی هی hey, بار برات داره به شکلی میاد که شما میپسندید اونم میدونه چجوری بار به شما تن. اما یه موقع وسط این داروخونه‌ها یه کارتون میاد، دو تا میاد، سه تا میاد، پنج تا میاد، مختلف میاد، هی هم تو قراقاطی میره. خاصم میگه آقا میزنی زیرش میگه من نمی‌خاستم، نمیتونه چیکارشون بکنم اینا؟ هم. قراقاطی همینطور میاد. بعضی اینطوری سخنرانیش بود. <تصفح> یعنی به گونه‌ای که درست شد؟ نیازمند به اینه که اجازه بده وقت ابتدا وقت ابتدا شما اون با قول خودمون تنفس رو در اینجا ایجاد کن، برای همین هم از که گاهی اوقات این لازم وقت و ابتدا خیلی مهمه چطور اجازه بده پشت سر هم همینطور مطالب نیاد گاهی اوقات مجبور میشه یه ضرب المثل وسطش بزنه یا آنتراک بده یه چیزی که بتونه این اون مطالب رو جمع کنه و انتكونم مواتن الوقت فیه قویتا به نفس یعنی شفادهنده باشه برای نفس محاطب بعد اینجا مهمه. حالا میخواد توی عالم این کتاب در مصر کتاب درسیه می‌خواد توی عالم نوشتار در بین همه بلاغی‌ها یه نمونه بیاره برای اسلوب خطابی که بگه ببینید این اصطوب خطابی رو نگاه کنید چیه؟ چیه؟ یه شاه به قول خودمون نشون بده هیچ کسی رو جز کلام و امیر رو علیه آلاف و تهییت و السلام نظام میگیم کلام و امیره امیر و این کلام اینو میاره و این سخن است از اسلوب خطابی که در نحج و بلاغه آمده یکی از خطبه های نحج و است من این رو اشتا الله در جلسه آتی این خطبه رو براتون اول میخونم بعد وارد بحث تشمیح میکنه جلسه آتیمون. مقدمه به طور کل تمام میشه با این اسلوب خطابی درست همون شو نمونه اسلوب خطابی خطبه نحجد سختی چار قدیم اینو تمامش میکنم بعد از اینکه تمام شد وارد اصل مطلب میشیم که اسلوب ادبی و اسلوب خطابی و اسلوب علمی تمام شده اصالی بکنم تعریف فساحت و بلاقت هم تمام شده مقدمه تمام شما به شکل یه صفحه جزوه ازش میکنید بعد انشاءالله یکی دو صفحه جزوه تیه میکنید وارد بحث علمه بیان میشیم که اول کار ما و هیچ قیبتی هم درش نکنید چون ببینید اگر تشبیه رو یاد گرفتید استعاره و مجاز رو که بعد میخونیم از روی تشبیه ساخته میشه اگر تشبیه و مجاز رو یاد گرفتید کنایه که بحث آخره از روی نزاخته پس اگر شما در تشبیح لنگ زدید در استعاره براتون سخت. درست شد؟ تشبیح رو چون ما توی استعاره میگیم مثلا تشبیح فلان یادتونه اون بود، بود اونو اینجورش بکنیم شه استعاره فلان پس بنابراین از آن اولش با قول قوله الهی به شکلی کاملا با نشاط در کلاس باشیم از اول هفته آینده انشاءالله اصل ما پس ما میشه به خدا میسپرم شما رو علی علی و صلی الله علیه نبی نبی و آلیه تاهرین و معید باشید و علیکم و رحمت الله و برکاته